بسم الله الرحمن الرحیم درس امروز ما و شما درباره دفاع از قرآن کریم در دیروز ما و شما ما میشنویم که یک تعداد از دشمنای اسلام، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من در روزهای اخیر ما شما شاهد خطرناک ترین حادثه در تاریخ افغانستان بودیم که و حادثه نشر کتاب به زبان دری فارسی و نوشتن انوان قرآن پاک بالای یزوست امروز ما منعیس یک مسلمان اول باید در نظر داشته باشیم که قرآن چی رو میگن کلی مسلمان و علمای اسلام به اتفاق دارن که قرآن یزیمشان کدام کتاب گفته میشه اول کلام منزل یعنی نازل شده کلام منزل است که نازل شده از طرف خداوند از طرف خداوند جل جلاله توسط توسط جبریل امین علیه السلام بالای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به زبان عربی موقوف در سینه های مسلمانان حفظ است با تلاوت آن در قراءت در قرائت نماز عبادت می شود مستقیم دادگام تقدم می کند. علمای اسلام میگن که خود قرآن از و کلام منزل است. وقتی که میگم کلام منزل است مانایی است که ای قرآن عزیم و نازل شده بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که از طرف خداوند متعال جل جلالهو توسط توسط جبریل امین که تخلصش امانت کار است. توسط جبریل الله علیه السلام که تخلصش امین است با بسیار امانت و بالای شخصی که او هم در بین قوم خود نام امین امانت کار جورت داشت، که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است، بالای زن آذول شده و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با امانت قرآن از مشانه و کاتبان وحیه میگفت و کاتبان وحی او را نوشته کردند و همچون حافظای قرآن بودند که او را حفظ میکردن و قرآن از امشان از وقت نزولش تا امروز در سینه های انسان میکردن. حفظ است که یک جیل به چیل دیگر او را انتقال میدهد. وقتی که ما میگیم که لفظ منزل است یعنی اونمو الفاظی که خدای پاک توسط جبراییل علیه السلام بالای محمد السلام است اون را نازل کرده زبان عربی از او موقوف است چی مانم؟ مانای است که وقتی میگیم که الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين این قرآن است. ای زبان قرآن، اینا میگن توقیفی است. چی معنا توقیفی که چیزی که بیان شده باید دست رو تو توقف بکنی مثلا وقتی که میم الحمد لله رب العالمین خود عالمین مخلوقاته میگه. و کلمه مخلوقات کلمه عربی است بناهن اگر یک کسی بود که الحمد لله رب المخلوقات ما که اینی قرآن نیست اگرچی زبان عربی هست لاکن حتی به زبان عربی هیچ کس حق نداره که یک کلمه قرآن هم کلمه دیگه انتقال بده. چرا؟ چرا که قرآن ازیمون شان اونمون کلامی گفته میشه که خداوند متعال جل جلوه از لوح محفوظ به حضرت جبرائیل علیه السلام و از حضرت جبرایل علیه السلام به حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم کلمه با کلمه آیت با آیت حرف با حرف سوره با سوره برش گفته شده اینال حتی به عربی بسیاری کسایی که قرآن از باشان با زبان عربی هست حتی عربی ها حق ندارن که یک کلمه قرآن تغییر بتن به کلمه دیگه عربی که معادل از این ولو با عین مانه را داشته باشد ولو که مخلوقات و مانای آلمین می که بگیم که عالمین یعنی مخلوقات هر چیزی که بغیر از خداوند است او را میگن که عالمیان است یعنی هر مخلوق عالم گفته میشه. پس وقتی که در عالم این تمام مخلوقات داخل میشه، ما حتی با زبان عربی حق نداریم که کلمه قرآن بگیریم ایوازش کلمه دیگر نوشته بکنیم. اگر کس نوشته بکنه، با بازور قرآن نمیگی. میگی می قرآن از روشان نیست. چون اصطلاحات قرآنی اصطلاحات است که خدای عزوجل او را اختیار کرده و در هر اصطلاحی از او در هر اسطلاحی از او هزاران ایجاز قرآن است. هزاران موجزه است. که اگر اونمو کلمه تغییر کنه به کلمه دیگر اونمو مفهومه اونمو ایجاز داده نمیتونه. این حاله هیچ کس حق نداره که یک کلمه قرآن ایا که نعبودو و ایا که شما ببینید، ایا که و ایا که نستعین وقتی که ما میمیم ایا که نعبود و ایا که نستعین یک میگه که نعبودو که نعبودو که اللهم و نستعینو که و نستعینو که عین مفهوم هم که خدای ترا عبادت میکنیم و خدای از تو کمک میخوایم ما میگیم که اینمی کلامه که تو گفتی اگر چی عربی از ای قرآن نیست. چون قرآن ایا که نعبود و ایا نستعین است به حتی در زبان عربی کس حق نداره که یک اصطلاح قرآنه یا یک جمله قرآنه پس پیش کنه چون اونمو جمله که آیت قرآن است پیش کند زده آیت قرآن است اونمو آیت قرآن توقیفی است. که باید انسان اونمو را حتی خود پیغمبر سلام ای حق نداشت که یک کلمه قرآن بگیره و کلمه دیگه تغییر بده. هر سال در حدیث شریف میخوانیم که در حدیث شریف میخوانیم که هر سال جبریل علیه السلام محمد سال یک مرتبه در ماه مبارک رمزان قرآن و صورت مکمل کت پیغمبر سلام گردان بکرده هر و هر کلمه و کلمه آیت و آیت سوره و صوره سپ اینالا اگرچه قرآن به اساس ضرورتها آیت ها آمده لیکن ترتیب قرآن ترتیب قرآن هم توقیفیست یعنی به ترتیب که حضرت جبرایل علیه سلام برای حضرت محمد صلی علیه سلام گفته باز برش فامانده که اینی آیت اگر چی قبل آمد یا پس آمد مثلا ما شما میفهمیم که اقرب اسم ایراب بکلدوی خلق اولین آیتی بود که در غار حرا برای پیغمبر صلی الله علیه سلام نازل شد ولی وقتی که ما میبینیم ترتیبش خود سوریه اَمِّ آیت اقرب اسمی را الَّذِي خلق تا سوره 29 گذاشته شده. این یکی گذاشت گذشت، اینم که حضرت جبرائیل علیه السلام برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحیه و سلم وحی کرد و برسومون که اینی سوره ها را باید به این ترتیب که از حق نداره که یک سوره قرآن بگیره از آخر بیاره در دیگه جایی در قرآن از میشون قصه ها هست، قصه حضرت موسی علیه السلام. قرآن کتاب قصه خالی خود قصه حضرت موسی سلام السلام یا قصه موسی السلام روی فرام و قصه حضرت آدم هست. در چندین جای قرآن تکرار شده. به خاطر عبرت و پند است. وقتی که این قصه به خاطر عبرت و پند تکرار شده، بنان که حق نداره که بگه اولا من این قصه‌های موسی علی السلام و کلش رو در یک جای میارم. چرا؟ ترتیب قرآن کس است، دیگه حق نداره که دست بزنه. پس چیزی که و از این خاطر در حدیث شریف میه که حضرت السلام در سال اخیر به امرای پیغمبر در ماهی مبارک رمضان در سالا یک مرتبه قرآن تکرار میکرد در اینجا دو مرتبه تکرار کرد و آیات شریف است و حادیث شریف است حتی در قسمت لحجه قرآن حدیث شریف است که چون او وقت لحجات زیادی وجود داشت مثل که ما و در زبان دری لحجات زیاد داریم ایراتی یک قسم لحجه دارن مزاری دا ها دیگه قسم لحجه دارن در کابل دیگه قسم لحجه هست مردم شمالی دیگه قسم لحجه دارن مردم مثلا هزارجات دیگه قسم لحجه دارن کلیش زبان دریست لیکن لحجاتش فرق میکرده و در زبان عربی هم اینی قسم لحجات وجود داشت در اونجه وقتی که قرآن عزیم شانه نوشته کردن اونجا گفته شد که شما باید قرآن عزیم و شانه به لحجه قراش چی کنین؟ نوشته کنین چون, قر... چون لحجه, لحجه قراش فسیه ترین لحجه واضح ترین لحجه بر کل لگی بود از این خاطر گفتن که قرآن به زبان فصیح و بلیغ فرستاده شده از این خاطر گفت که اگر کدام کلیمه رو نشتر میکنین در نوشتن از این مثلا, یکی... کسی... مثلاً کس یک کس کسرم میده یک کس فتهمیتش شما به لحجی قرآن از ایموسیان نازل شده که حتی یک قبیله دیگه نمیتونه که به لحجی خود قرآن نوشته بکنه حتی لحجی قرآن هم چی از توقیفیست که باید اونمون لحجی با لحجی قرآنش نوشته شود. در تعریف ما خواهدیم که در پاروی ازی قرآن عزیم شان در سینه های مسلمان ها حفظ است بنامه قرآن عزیم و شان کتاب است که در سینه های میلیون انسان با اونمو متن نص اصلیش که نازل شده حفظ شده است اما چیزای دیگه ای که مثلا بجای از بیاریم او قرآن گفتا نمیشن باطلاوت آن عبادت صورت میگیره مثلا ما شما در نماز در نماز در نماز قراعت فرض است اینال حدیث قدسی ما داریم حدیث قدسی رو عالم میگن که حدیث قدسی عبارت از احکام خداوند است گفته های خداوند است حدیث قدسی که معنایش از خداست لیکن لفظش الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیه سلم است حدیث است معنایش از طرف خداوند است، لکن الفاظش از کی؟ الفاظش توقیفی است، الفاظش پیامبر صلی الله علیه و گفتن. از این خاطر علماء میگن که اگر کس حدیث قدسی را در نماز بخونه، قرائتش درست نمیشه. چرا با الفاظ حدیث قدسی عبادت نمیشن اما عبادت توسط چی میشه؟ خواندن قرآن بنام قرآن است که اگر یک نفر میخونه در مقابل علفش ده ثواب است در مقابلش لامش ده ثواب است در مقابل میمش ده ثواب است انا وقتی که ده ثواب است اگر یک نفر حدیث, حدیث خودسی رو میخونه در مقابل حرفایش ده ثواب نیست چون که الفاظش الفاظه قرآن نیست الفاظش الفاظ الهی نیست الفاظش از پیغمبست همه است معنایی که بعدی گفته شده پیغمبست همه با الفاظ خود رو تعبیر کرده او قرآن گفته نمیشن اگر ما بیاییم قرآن از ایمشان رو باز کنیم بسیاری آیات قرآن است که هر آیت بیان میکنه که این آیت بیان میکنه که قرآن به زبان عربی است در سوره شورا آیت نمبر هفت و کذالک او حینا قرآن عربی سوره شورا آیت هفتان و به این صورت برای قرآن عربی را وحی فرستادی بنابراین اینجا تأکید میکنه که قرآن عزیم و شان به زبان عربی است آیت شریف سوره زخروف آیت سوم سوره زخرف، "انّ جعلناهو قرآن عربیا لعلّكم تأقیلند". ببینید قرآن عربیا. پس اینجا هم قرآن به زبان عربی گفته شده. در سوره تاها آیت 113 و سیزده، "و كذلك أنزلناهو قرآن عربیا". و كذلك أنزلناهو قرآن عربیا. در سوره زمر. آیت 28 قرآن عربی غیر دیعای و جن لقوم در سوره یوسف آیت دوم اینا انزلناه قرآن عربی لعلكم تعقلون به نروقت که ایات قرآنی را هر کدام شما و شما یاداشت میگیریم علما میگن حتی یازده آیت است خب اینی آیت هایی را که ما پیدا کرده تا هر کدام از این وقتی که یک نفر میخاند قرآن اونمو قرآن است که خداوند متعال جل جل با زبان عربی اونه اختیار کرده بنام قرآن حفظ است اصطلاحات قرآن حروف قرآن ها. کس نمیتونه که یک حرف قرآن ها به جای حرف دیگه انتقال بده چون حروف قرآن اونمو حروف است که توقیفی است که انسان باید اونمو حرفی که گفته شده باید با اونمو حرف خانده شود. حرکات قرآن کس حق نداره که حرکت قرآن یک حرف یک حرکت از دوره به حرکت دیگه انتقال بده. الحمدو که حق نداره که الحمده یا الحمدی بخانه باید اونمو الحمدو لله رب العالمین اینال وقتی که کل از از طرف خداوند مطال جل جلوه جل بیان شده خب ایناله نه موضوع دیگه که اختیار زبان عربی بر قرآن از این مشان بعضی‌ها وسر ازی بحث می‌کنن خب ما مسلمان وقتی که مسلمان هستیم و اخلاص داریم و ایمان داریم و بیعت داریم که کتاب‌هایی که قبل از قرآن از مشهور بود با زبانهای دیگه اختیار شده بود پس خداوند متعال با زبان عربی اختیار کرده وقتی که او خدای ماست و ما به او ایمان داریم و کلام خدا به زبان عربی نازل کرده پس حکمت از خود خدای عزوجل می‌فهمه پس مسلمان در قسمت تسلیم است اگر خداوند تورات و انجیل و زبور و دیگه کتابها را به دیگه زبانها اختیار کرده بود و قرآن از مشان به زبان عربی اختیار کرده اختیار خداوند است پس وقتی که خداوند اختیار کرده ما مسلمان ها تابع اوامر و احکام خداوند متعال جل جلوهو هستیم از این خاطر مسلمان در این قسمت،, ای قسمت هیچ کدا مشکل ندارن خب حالا میایم سراغ موضوع دیگی که چرا امروز این مشکلات ایجاد میشه و این مشکلات کی ایجاد میکنه ما شما میبینیم که به اشکال مختلف به نام آزادی های مختلف دشمن های اسلام میخوان که دسیسه دسیسه ها میسازن برای اسلام گای کارتونای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشر میکنن و بنا آزادی برای اعم میتن و قلب یکوری میلیارد مسلمان مان جری حدار میسازن چون پیغمبر صلی الله علیه و, علی و سلم از مادر، پدر، فرزند، خانم تمام اخارب انسان برای یک مسلمان ارزش بهتر داره و روزیاتر دوست داره پس وقتی کسی پیغمبر صلی الله علیه و, علی و سلام آشنا میتن مثل که مادر و پدر ما را دشنام داده باشن مثل از این که تمام فامیل ما رو داشتنام داده باشن ولی دشمن اسلام با بسیار به هیایی ایکار رو در حالی که برای یک مسلمان اجازه نیست که حتی بط بط پرست داشتنام بتن احیانا مثلا بعضی از کلمات مقدس مسلمانان رو در سر توب نرشتن می و در قریه ها می پردن. این باید چی مقصد میکنن چون اونا کسایی که تجار سلاح هستن باید ملتها جنگ کنن تا کو سلاح خدا بفروشه اونا بزور قصدن میخوند که شغلی جنگه شغلور بسازن تا که مردم ازی متاثر شدن یک کسی که مثلا دشمن سرسخت است یک انسان بسیار فروخته شده نام سلمان روشی و میخیده یک کتابه که داوود دشنام از به پیغمبر خدا دشنام از به آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام دشنام از به صحابه کرام او کتابو میگیره چاپ میکنن و باز ملکه بریتانیا میخیزه باز برازو جایزه و برازو مدال می میتند این دشمنی و از بدبختی از اوناست که اصلا اونها حقوق انسان چی که هیچ انسانیت مراعات نمی‌کنن در غیر از وقتی که انسان حق یک انسان مراعات می‌کنه واس وقتی که یک کسی عقیده داشت وقتی که تو عقیده هم نداری پس بگذار او را کور دوز دارن تو چرا اونرا توهین میکنی و باز برو تو انسان‌هایی که دشمن اسلام هستن و گپای زشت می‌زنن واسه ما رو تشویق می‌کنی امروز وقتی که سوال میشه که چرا امروز مثلا کتاب چاپ میشن ترجمش و در از و قرآن پاک نوشته میشن اصلا چرا این کاره میکنن چی هدف است از نش رزی خب اگر این کاره یک انسان مخلص و با تقوی و انسان که شرایات خوانده و بر ترجمه و تفسیر و قرآن انسان باید علوم زیادی را یاد داشته باشه خصوصا در زبان عربی مهارت بسیار زیاد داشته باشه و در علوم اسلامی تکبته نا قرآن این ترجمه و تفسیر بکنه پس او اگر یک انسان مسلمان با تقوا بکنه وقتی که نظرش رسید که خداوند گفته که قرآن عربی پس عقل بر خود جرأت نمیدا که من در خوشی یک کتاب کوره و ولو ترجمه قرآن باشه نامش قرآن بانم چرا که قرآن عبارت از لفظ و معنا هست وقتی که از لفظش جدا شد معنایش گرفته شد باز قرآن گفتاره میشن حسره اكو سلمان وقتی آیته سر رسید خود به خود می اگر ما میره با اخلاص و می کارا کردیم ی ای آیات قرآن کلش من ترجمه میکنم ی خوئی قسم گفته پس چرا این کارا میکنه پس معلوم میشه که این کارا کسی میکنه که اون کار کلان شده قبلی هست چه قسم کار کلان شده قبلی است یریدون الیوت که اونور الله با افواههم والله متم نوره ولو کرها سوره صف آیت 80 دشمنان اسلام میخوان که خاموش بکند نور خداوند به زبانهای خود. و الله موتی منوری و خداوند نور خود تکمیل میکنه. ولو کاری هال کافر رو اگرچه کافرا ایر بهت میبینه. و, و اینا دشمنای اسلام فامینه که خداوند متعال جل, جل میگه که اینا نحونا نزلنا ذکرة اینا نحونا نزلنا ذکرة و اینا له لا حافظون سوره الحجر آیه نمبر 9. پس خداوند متعاق جل جل و کلام خدا که قرآن عزیم و شان میگیم و در طول ها حفظ شده و حتی سرسخت درین کسایی که از اسلام بسیار متنفر بودن بنامه جوسف ادوارد استس و دعوت میکرد بر مسیحیت وقتی که میبینه که قرآن عزیم شان در طول چند چارده قرن آیاتش، کلماتش، حرکاتش، سوراهایش، صپاراهایش، کلش مکمل حفظ شده. هیچکس جرأت نداره که یک کلمی قرآن تغییر بده. بالاخره مسلمان میشه و اونا میفهمن که والا اگر این قرآن بدست کلیگی برسه، و روز و روز وسایل، وسایل اینترنتی، وسایل کامپیوتری روز و روز زیاد شده میره و دنیا مثل قریه کوچک میگرده و بالاخره مردم قرآن مطالعه میکنن و وقتی که قرآن مطالعه میکنن حتی مثل خانم بیتی با من کسای پیدا میشن. که اینک خورشید در غرب طلوع میکند به این خورشید و قرآن در غرب طلوع میکند و مردم مسلمان میشن به ای. خب اینان دشمنان اسلام چه قسم میخوئن بیر از بغند ببرن وقتی که لفظش هرقدر کوشش کردم حتی در کویت چند سال پیش کسایی پیدا شدن از دشمنان اسلام که قرآن شریفه بعضی آیات ازی ای حذف كردن و اورو چاپ كردن وقتی که توزیع كردن اول کسایی که در مقابله ازنا قد علم کردند و خاصن محصلین با انتور بودن جووارای مکتب بودن اینا خیسن و دیدن اینو گفتن اینو قرآن نیست یا ای آیات چه چیز كردن فورا این قران شریفا را همین چیزایی را که چاپ کرده بودن جمع كردن و اورو حریق كردن و از بغند بردن و بر مردم کل ايده مقابل ازو خیسن هر زن و مرد مسلمان هر پسر و جوان و دختر جوان مسلمان و ایده گفتن که نمیتونن چون نتونسن قرآن عظیم شان در لفظش خود قرآن تغییر بدن پس وقتی دیدم که ایره کردن نمیتونیم چی باید بکنیم بین یک پلان دیگه بسازیم چه قسم پلان بسازیم پلان دیگه اینو میسازیم که قرآن شریف اول کوشش میکنیم در بین مردم ترجمه عزیرا بکشیم قرآن از لفظش جدا کنیم و این ترجمه را سرشتش نشونیم قرآن پاک وقتی که این نوشعه کردیم با گذشت زمان بگو زاش زمان امروز دری شد سبا پشتو میکنیم دیگر روز به فشایی بزنیم دیگر ازبکی میسازیم و آیسه آیسه باز انال و او آیات قران که در او آیات مثلا جهاد است دسیسه های صلیبی ها و یهودا و دشمنان خداوت در او مطرح میشه برای ازنا بیان میکنیم اناله او آیات باز ما عائسه عائسه از بینش از بین ترجمه بسیار میتاریم زود از بین ببریم و به بالاخر 40 سال بعد 50 سال بعد به نام قران چیزه رو برای مردم پیش بکنیم که اه اه او این از او قرآن نباشه از این خاطر این پلان این پلان به این خاطر میکنن خب ایره کی این کار را میکنن اینال ایره ایره این ای ای کار کی میکنن ما می‌فهمیم که ما میفهمیم و این خوب میفهمیم با هیچ انسان چیزا میفهمیم که این می در بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی حتی فوهانتونای وجود دارن که اونجا میگن مستشدقین هستن که بنامه خواهر شناس اونا مثلا تفسیر میخوارن نبایی که تفسیر عقیده دارن بلکه من یک تخصص حتا میتونن در سوربون برن و اونجا از دپارتور کسب برم اونجا تخصص در شریات بگیرن اونا بر تو دکترا و مصری در شریات میدن لکن ایمان ندارن استاد میخواد تفسیر برات درس میده لکن ایمان ندارن فقط درس میده به فقه ایمان نداره طه حسین مثلا در مصر اوتاهای حسین مصری که ادب عربی رو به نام امید عربی عربی گفته میشد طه حسین رفت به دکترهای خدا گرفته بود در ادب عربی و پس وقتی که آمد باز چون عقیده ایش اونجا تغییر کرده بود باز آمد سر قرآن اعتراض میکرد و بعضی اعتراضات سر چیزا میکرد که باز علمهای اسلام تمام دلائل و نظریات ازور رد کردند و جوابش دادند. اینال اونوت مردم ها در اونوت جای ها اصلا کار اونوت انسان ها میکنن و اونا چون در خدمت استعمال قرار دارن این کار رو میکنن ولی از کی استفاده می استفاده میکنن انعال وقتی که میکنن چیز بکنن، انال دوین مسلمان های انسان های به شخصی است انسان هایبی ایمان انسان های مجبورهیت انسان هایی که ای تخصصشان در شرایط نیست انسان هایی که از قرآن اچ بخبر خبر نیستن زار که قرآن شناس نیستند انال او چون به شخصیت بود از وجود از این به استفاده میکنن، و نام از او او نشر میکنن، و نام از چاپ میکنن و وقتی که کردن نتیجه چی میشه نتیجه میشه که اگر مسلمان ها وقتی که ببینن باشد که بیبینن مسلمان ها و فکر بکنن که والا این کار اگه آدمی کردن مسلمان است شاید کار خوب باشه حالله اگر ای کار کس به اخلاص میکنه خود قرآن از این تو که خوب ترجمه کرده هم میتانی. پس پسی ای آیات قرآن که میگه قرآن به زبان عربی هست پس این وقتی که بدری انتقال بتی آیا سر زوق او را قرآن گفته میدانیم پس او قرآن گفته نمیشه چون قرآن حتی گفتیم که اگر اصطلاحات قرآن هم از جایش برداشته شوند باز هم او قرآن گفتن نمیشه از این خاطر ما مسلمان ها و تمام مسلمان های دنیا متفقانه به متحدانه به کل باکن شناخت داریم و باور داریم و یقین داریم که قرآن عظیم کلام خداوند است اونم کلام عربی است که با اونم الفاظ خود در طول 14 قرن حفظ شده و هیچ کس نمیتونه که این قرآن عظیم تغییر بده و اگر کسی در لفظ قرآن عظیم یا در کدام کلمه‌ای قرآن خودام تغییر مینه در حقیقت ای از دین اسلام مرتکب میشه اگر این کار قصدم میکنه و اگر سهو میکنه با یک توبه بکنم و اگر چیز از ترجمه قرآن شریف به زبان دری پشتو قشه‌ای انگلیسی نشته میشه هیچ وقتی اون ما قرآن گفتن میتونیم چرا که ما وقتی که قرآن ترجمه میکنیم ما میگویم که الحمدو لله رب العالمین حمد سنا وصفت است خاص برای خداوند که پروردگاه نمامی مخلوقات است اینال من اینه چی میگم؟ من میگم که این ترجمه معانی قرآن است چون من معنای این کلیمه را پیدا کردم اونو معنا را من ترجمه کردیم به خود لفظ قرآن انسان نمیتونه که هو به هو ترجمه بکنه حتی انسان معنا را میگیره و معنا از این خاطر اتا اینه میگن که ترجمه قرآن نگوین بگوین که ما ترجمه معانی قرآن اما معنای را که ما فهمیدیم او را ما ترجمه کردیم شاید کسی دیگه از ما کدر بهترتر بفهمه. و وقتی که ما مکی ایر ترجمه کردم اینی الحمدلله رب العالمین این آیت قرآن است اما ای باز آیت قرآن نیست سر از او اطلاق آیت قرآن کردن نمیتونه میگیم که ترجمه معانی قرآن است از این خاطر یک انسان مخلص و با ایمان هیچ وقت ایکار رو نمی کنه و ایره باید همگی متوجه باشه و کل مسلمانان ها متوجه باشن از این خاطر ضرور است که اگر ایختم کتاب ها به ایره برای علمه و دانشمندان خود تسلیم بکنیم که تا که علمه او رو بخوانند و در بین از اون چون اونا عادت دارن که از مو اول در بین آیات قرآن چی میکنن مثلا بین اصل میکنن. در بین اصل زورت سیر میکنه و او رو کی درک میکنه کسایی که متخصص هستند و قران شناس هستن ایناله خواندن از او استفاده از او برای مسلمان ها جایز نیست و اینکه در پشت از او قران پاک نشه کرده این هم نارواست این هم با اتفاق تمامی اولاما کار غلط است چون قران عظیمشان میتونن که صرف در کلام نشه بکنیم که او کلام خداوند متعال است و ترجمهش کلام خداوند متعال شده نمیتونه از این خاطر ایراد نباید قبول بکنیم کسایی که در دستشان است ایر بر علما تسلیم بکنن علماء سرزو تحقیق بکنن و عیبه هایش پیدا بکنن و کسایی که مثلا بر علماء نمیتر اگر کس برشان میدن بهتر است که ایره در بتن و ازو او استفاده نکنن چرا که این یک نوع از دستایس دشمن های اسلام است اینال من شما اگر چیز نظر داشته باشین یا سوال داشته باشین مده خدمتان است بفرمی کسی که این جزای و این آلو <سؤال> در قسمت جازای دنیاوی از این در قسمت جزای دنیوی ازی اگر اینمی نفر ایکار کرده و علما و کسایی که مفتی هستن و قاضی هستن اونها صلاحیت دارن وقتی که این نفر را تحقیق میکنن اگر بفهمن که اینمی نفر این کرده و قصدن و بالای ذ حکم مرتد و جزای مرتد میبینن و اگر احیانا حکم مرتد بالایش نشه بعضورا مجازات تذیری میگن که مجازات تذیری در شریعت اسلامی است که مثلا از یک برو گفتن شروع تا به قتل از او خاطر بازو مطابق اونمو شرایط و حالات باز قاضی بلو قسمت حکم میکنه. علتش حکمت خدای عزوجل است وقتی که خداوند متعال خواست که این زبان به زبان عربی قرآن عظیم شأن نازل بکنه حکمتش اختیار خداوند متعال است و ما من یک مسلمان میگیم و کلام عربی رو وقتی که انسان تحقیق بکنه کلام عربی زبان عربی زبان است که بسیار کلمات زیاد داره فصاحت و بلاغتش زیاد است که اورباس انسان میتونه که اتونمیال وقتی که ما شما میبینیم در بسیاری اصطلاحات در علوم در ما چیز نداریم مثلا کلمات نداریم لکن در زبان عربی هست و از اون استفاده میکنم مثلا در زبان عربی برای یک چیز مثلا پیجان نام هست خواهر ما؟ نامش شش هزار جلد شش هزار جلد و او کسی که نامش ده پوششارش نشوسته کردن کدام کسی بنا تو نسبت داده که ایرانی است که ما نه فهم که ایرانی است شخصش مجهول هویت و رو کس نمیشناسند اما کسی که رو نشر کرده او به نام است و خودش صلاحیت نشر قرآن کریم نداره به خاطر از یک ژورنالیست بوده و ژورنالیست در هر چیز باید یک متخصص کار بکنه مثلا یک کس انجینیر هست نمیتونه که بره بگه ما دواخانه یا ماینخانه جور بر بره تپ اونو نفر است که یکیش به خیلی قفوز علمه هست بله کدام کسی از برنامه قاری مشراق و هم درموز شده میگه سادوا وار ناد میخونده چی میخونده مقصد اونو تا آدم که یعنی آدم به شخصیت هست که همیشه همیشه دشمن اسلام از این مسلمان های ضعیف العقیده استفاده میکن برشک چند پمیتان و او که ناچی میری بل که پیسه میلگا اما ایی که مثلا اون را نشک ترجیبه کنیم باز نشک نامشه که قرآن است قرآن نیست به انگلیسی به فارسی به پشتو به دری اگر قرآن شریف ترجمه میشه اون رو قرآن گفته نمیتونیم اما اگر باییم ترجمه قرآن کردیم درست است حکومت بچاره در مقابل چی مقاومت که در خونه اگر نفر مرتب شد وقت رفت ایتالیا از حکومت فلی خود ایج. توقع و امید نداریم چون چندین مرتبه که دیدیم امید ما را به خاک مبدل کردن روز خوش